سلام دوستای خوب سلام به جام آقای قهرمانی ما کماکان داریم تعامل می‌کنیم با همدیگه برای خوردار نیک و بحث قضای سالم و این که شاید بد نباشه یه بار با همدیگه مرور کنیم که چرا قضا خوردن و خوردار سالم داشتن مهمه خب اگه بخواییم یه مثال بزنیم برای ذهنهای منطقی فرض می‌کنیم که ما هر چیزی که داریم میخوریم. یه سفریه و و که سری اطلاعات و دیتایی هستش که داریم میرزیم توی یه ماشینی که خودش تجزیه تحلیل میکنه رو هر کدوم مخصوص جای استفاده میکنه و کاربری میکنه. حالا هر چقدر این دیتاها ها سالمتر و طبیعی تر باشن و بیشتر سلامتی رو به ما بدن و بیشتر درستی رو به حالا اون سیستم ماشین بدن ما بدن، خب طبیعتا مدل پردازش و مدل خروجی این ماشین بدنی هم تغییر میکنه و کیفیتش بالاتر میروه و سالمتر میشه حالا ببینیم که برای این جلسه آقای مهین قهرمانی چی برای ما آباده کردن و میخوان در چه خصوص با ما صحبت کنن بازم سلام من در خدمت شما هستم سلام ارزو میکنم خدمت شما و شنوانده های عزیز متشکرم از دوستتون که باز هم این فرصت رو به من دادیم که بتونم بیشتر وارد بح تغییر تغذیه بشن کایش می‌کنم عرض شود به خدمت شما که خب در این چند سال حالا به دلیل اینکه خودم خیلی با این مسائل درگیر بودم و در افراد مختلفی که میخوان رژیمشون تغییر بدن حالا به خصوص کسانی که میخوان خام گیاهخوار بشن و خب همینطور در مورد کسانی که میخوان رژیم‌های دیگر رو هم در پیش بگیرن و کلن اصلا تغییر بدن در عادت‌های غذاییشون ما دیدیم که یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها و منتین چالش‌ها که شاید از خود چالش آموزش و خود چالش کمبود اطلاعات در واقع وسیع همین مسئله جنبای روانی هست یعنی جنبای روانی قضیه چون در تغییر تغذیه افراد معمولاً یا اطلاعات کافی ندارن که باید چه کار بکنن و یا اینکه بعد از این حتی اطلاعات رو هم به دست آوردن حالا انجام دادنش پرشون سخته خود من به عنوان مثال و به عنوان یک کسی که خیلی با اشتیاق شروع کردم خامگی رو و خیلی از همون ای که آگاه شدم نسبت به این موضوع و از اون ای که متوجه شدم چه اشتباهاتی داشتم در تغذیم خیلی واقعا تمام وجودم این رو میخواست که تغییر بدم تغذیم رو و خامگی آخار باشم و خامگی بمونم خب من در تغییر در اون خیلی راحت تونستم تغذیرم رو تغییر بدم. اما بعدها یه باشه باشه یک روانی برای من ایجاد شد که حالا این رو امروز میخواییم بیشتر در این مورد صحبت کنیم چه عواملی اصلا باعث میشه که ما به خوراک وابسته بشیم به لازه روانی و چه عواملی باعث میشه ما در مقابل تغییر مقاومت کنیم و چه راهکارهایی وجود داره عوامل وابستگی به خوراک یعنی وابستگی غیر ضروری در واقع چون بالاخره بدن ما به خوراک نیاز داره ولی یک زمانی هست چیز خوراکیایی که بدن ما اصلا هیچ نیازی بهشون نداره و شاید خیلی برای ما مضر باشه ما به لازم روانی خیلی تمایل داریم به مصرف اینها این بخش زیادیش منشع بیوشیمی داره و منشع جسمی داره در واقع یعنی موادی در این غذایی که ما میخوریم هست که اینها برای بدن ما وابسته ایجاد می‌کنند هم بلاز جسمی ما رو وابسته میکنه و هم ذهن ما بهش عادت میکنه و درگیرش میشه به عنوان مثال یکی از اعتاد این مواد گلوتن غللات هست و یا اسید آرییزامید که در سوختگی ها و قسمت های برشته شده نان هست و نشسته هایی که کلدن حرارت می بینن که تغییر رنگ میده و قهوه و تیره میشه. این یک ماده خیلی سمیه و مشکلات زیادی برای بدن ایجاد می‌کنه اما در این حال بدن هم به اون معتاد میشه. بدلیل اینکه بدن برای اینکه حد اکثر تلاشش رو می‌کنه که با این ماده سازگار بشه و بتونه اون رو راحت‌تر دفعش کنه و آسیب کمتری ببینه خب این بدن به این شکل یواش یواش با مصرف مستمر و دائمی موادی که سموم درش هست بدن یواش عادت پیدا می‌کنه و لازه بیوشیمیایی و این نهادینه میشه در ذهن ما و خب از طرفی در محیط بیرونی هم میبینیم که مصرف این نوع ها خیلی رایجه اصلا از بچگی به اینا عادت کردیم با همین خوراکی ها بزرگ شدیم یا مثلا یکی دیگه از منطقین موادی که ممکنه باعث این وابستگی به خوراک بشه اینه که خوراکی که حضمشون سنگینه و خوراکی که که برای برا یک مقدار خیلی کمی الکل در بدن تولید میکنه که خب الکل هم در تمام رفرانس های علمی نوشته شده که برای بدن سمه برای سلود سمه و بدن تمام تلاشتش رو باید بکنه که این رو دفع کنه خب غذای تخمیری به خصوص قلاتی که پخته شده و به خصوص وقتی که همراه با میزان زیادی پروتئین و چربی مصرف بشه در یک وعده غذایی این هضمش در معده زمان بیشتری میمونه تخمیر صورت میگیره و الکل تولید میشه این الکل مقدارش حتی خیلی کمه ولی خب در دراز مدت وقتی این هر روز تکرار میشه وقتی این بعد از هر وعده غذایی که می تکرار میشه این یک جور اعتیاد برای بدن ایجاد میکنم دقیقا مثل اعتیاد به الکول اعتیاد به مشروعات الکل. مون تا در یک شکل خفیفتری که این باعث میشه با وجود این که مثلا میشه به راحتی، رژیم رو تغییر داد در یک شرایطی یعنی مثلا غذای سالم اگه در دسترسمون باشه به میزان زیاد اگه واقعا همت هم داشته باشیم که بخوایم شروع کنیم ولی بازگاهی گاهی می‌بینیم که نسبت به بعضی ها خیلی اعتیاد شدید داریم مثلا در مورد ایرانی‌ها که بیشترین میزان و مصرف نان در دنیا رو دارن وقتی هم می‌خوان تغییر بدن رژیمشون رو نان یکی از غذاهایی که ترکش خیلی برای, برای مردم ما مشکله. خود من مثلا 6-7 ماه طول کشید تا تونستم وابستگیم به نان رو پایان بدم یعنی دیگه احساس نکنم اگه نون نخورم یه چیزی کمه یعنی میدونی چی میگم من میدونستم که خب این نون فایده خاصی نداره خیلی مزارات هم داره اما با وجود این که به میزان کافی هم غذا میخوردم مثلا تو همین خامگی آخاری به مقدار کافی میوه میخوردم چیزای مختلف اما همچنان بدنم راضی رازی ن خود خب من مثلا حالا محصولت حیوانی به اون صورت عادت نداشتم چون زیاد نمی خوردم قبلنم ولی ترک نان واقعا خیلی برای خود من مشکل بود و در اکثر خامگی آخرانی هم که تازه شروع کردن در سالهای اول خامگی آخری هستن همیشه یکی از غذاهایی که باعث میشه مثلا اونها به سمت پخت خاری کشیده بشن همین غذایی که همیشه میخوردن یعنی نان دورست. خب پس میبینیم که در واقع این ایتیاد غذایی، یک بخش بزرگیش منشاء فیزیکی داره، منشاء خوراکی یعنی خود خوراک اصلا عامل اعتیاد غذاییه. یک بخش بزرگیش هم مسائل اجتماعیه. و البته یه چیزی هم بگم، مثلا در خوراکی‌های طبیعی یک ویژگی مثبتی که دارن و اصلا یکی از ویژگی های خوراک طبیعی که بخوام تشخیص بدیم یک خوراک برای انسان طبیعیه یا نه، اینه که اگر یک مدت طولانی اون خوراک رو نخوریم بدن نه کمبود مواجه بشه و نه احساس بدی به ما دست بده مثلا در خامگی آخری که توصیه میشه اصلا میواه فست تا حد ممکن مصرف بشه هرچند الان دیگه همیشه همه جور ای در بازار هست و ما یک مقداری از اون غریزه و شیوه طبیعی فاصله گرفتیم اما به طور طبیعی مثلا هر میوه اگه در فستش استفاده بشه در فصل بعدی اون میوه اگه در دست هست نباشه انسان مشکل نمیخوره اما قضایی که اعتیاد آوره قضایی غیر طبیعی این هر وقت نباشه شخص مثلا ممکن عصبی بشه به هم بریزه حتی ممکنه بدنش یه مدت طول بکشه تا مواد رو ترک کنه اینها همه دخیل هست یک عامل دیگه ای هم که باعث میشه انسان به خوراک خیلی وابسته باشه اینه که مثلا کسانی که با پرخوری عصبی مبتلا هستن که خود من هم همین مشکل رو داشتم خب اینها ذهنشون شرطی شده که هر وقت مثلا عصبی شدن هر وقت خسته بودن هر وقت حس خوبی نداشتن با خوردن این حالشون احساس می‌کردن که بهتر میشه این عادت کردن و از ذهن وقتی شرطی شده دیگه تغییرش به این راحتی نخواهد بود با این حال که طرف میدونه که راهش این نیست یعنی مثلا اگه من عصبیم باید کاری کنم که آروم بشن، اما وقتی معارتشو نداشته باشم که چطور خودم رو آروم کنم وقتی راهش رو بلد نباشم خب همون راه در دسترس و همیشگی و همون چیزی که بهش عادت دارم یعنی سراغ خوردن رفتن برای نشوندن اون خشم درونی این باعث میشه که کلن هم به بدن بیشتر فشار بیاد به خصوص اگه طرف دچار پرخوری باشه و همین که کارمون سخت‌تر بشه که این برای رفعش نیاز داره که شخص از نظر روانی و از نظر خودشناسی بیشتر رو خودش کار کنه و اگه به عنوان مثال محیط خیلی پر استرسی داره یه مدتی محیطش رو عوض کنه تا جایی که میتونه تغییر بده در شرایط بیرونی زندگیش که زندگیش راحت‌تر بشه این کار را حتماً باید انجام بده چون اصلا وقتی تنش خیلی زیاد باشه انگیزه شخص هم کم میشه برای اینکه بخواد حالا یک سبک زندگی سالمی در پیش بگیره، بخواد یه عمر طولانی‌تر داشته باشه، سالمتر باشه، سرواز باشه. اینا وقتی انگیزش وجود داره که شخص احساس رضایت داشته باشه، پولان از زندگیش وا خوشبین باشه و مثبت نگر. در غیر این صورت خب اگه شخص عصبی باشه، اگه منفی نگر باشه، احساس وقتی کنه، خب دیگه در صورت اصلا عمر هم در نظرش خیلی چیز بی خواهد. درسته خب جواهی قهرمانی اگر موافق باشید ما یه میان برنامه بریم و برگردیم باز به صحبت شما بعض درستان نستونست این پیرمرد پیر نابینایی را دید که دست به گدایی دراز کرده است پرسید این پیرمرد مرد کیست؟ گفتند است مسیحی از کار افتاده است گدایی می کند میشان فرمود تا زمانی که پیر و ناتوان نشده بود از او کار کشیدید اینک که به این حال روز افتاده است خیر خود را از وی باز داشته اید از بیت المال خرج او را به پرداز میده. امام علی علیه السلام عواملی که تاثیر مثبت داره در تغییر عادات ما اینه که با افرادی که هم فکر هستن و با افرادی که هدف مشترک دارن سعی کنیم بیشتر در ارتباط باشیم با افرادی که ما رو درک میکنن سعی کنیم بیشتر ارتباط داشته باشیم و از افرادی که حالا میخوان ما رو دل سرد کنن یا چون مسئله به نظر اونها بی میخوان برای ما هم این تر بود کنن که بایستی ما نظرمون عوض بشه و مثل اونا فکر کنیم مسا کسانی که مثلا تمسخر میکنن ارتباطات اونها خیلی مهمه اصلا کلا در زندگی و حالا در مورد تغییر خوراک در وحله اول و تغییر سبک زندگی خیلی مهمه که به خصوص در روزهای ابتدایی و در اون دوران ابتدای تغییر حتما سعی کنیم با افراد مثبت تر با افرادی که تجربه از ما بیشتره بیشتر ارتباط برقرار کنیم ازشون کمک راهنمایی بگیریم این خودش خیلی انگیزه خوبی با آدم میده که ادامه بده یا اینکه اگه یه وقت حالا کم آورد یا قطع کرد یا مثلا شکست خورد دوباره برگرده به همین راهی که انتخاب کرده و یکی دیگه از عواملی که میتونه خیلی به ما کمک کنه برای اینکه تغییر رو به بپذیریم اینه که در ابتدای امر کمتر به خودمون سخت بگیریم یعنی احساس گناه نداشته باشین که حالا اگه یک لقمه هم پخته وقت خوردیم، حواس کردیم، دیگه دنیا تموم شده. نه. البته یک مسئله خیلی مهمی هم که در این بین باید در نظر گرفت، اینه که هر شخصی که بخواد رژیمش تغییر بده، بستگی به شرایط خودش هم داره تا قبل از تغییر. یعنی مثلا اگه یک شخص جوان باشه و نسبتا سالم باشه، کمتر بیماری داشته باشه، کارش راحت‌تره. اگه شخصی باشه که بیماری خاص داشته باشه که ممکنه حتی با یک بار ناپریزی خیلی حالش خراب بشه و خیلی اوضاش وخیم‌تر بشه اونطور شخصی نیاز به مراقبت بیشتری داره یعنی هم خودش باید خیلی مراقب باشه هم اطرافیان هم کسانی که میخوان بهش کمک کنن افراد بیمار کلا خیلی بدنشون حساس سره و در مقابل ناپریزی‌ها به خصوص و در مقابل هر عادت بدی خیلی سنگین‌تر براشون تمام میشه و مزراتش بیشتره و هر دفعه هم که این افراد بخانن ناپریزی کنن دوباره برگردن به رژیم خامگی آخری سخته رو تغییر عادت. یکی این موضوع که احساس گناه پس نداشته باشیم سعی کنیم با آگاهی پیش بریم سعی کنیم با اشتیاق پیش بریم این حس قوی این نیروش قویتر نسبت به احساس گناه و انگیزهی بهتری با آدم میده و دیگه احساس چون احساس گناه معمولاً با اساس محدودیت هم همراهه یعنی شخص احساس گناه میکنه که مثلاً یک لقمه پخته بخوره ولی در این حال اشتیاق شدیدی هم داره که حتما این کار رو انجام بده و دوست داره واقعا که غذای پخته بخوره خب این یه نوع سرکوبه و سرکوب همیشه معمولا نتیجه عکس میده نتیجه نامطلوب میده یکی دیگه از راهکارهایی که حالا در بین خامگیاهخوران و در بین کسانی که تازه کار هستن نسبتاً بهتر جواب داده اینه که در شروع امر کسانی که به آشپزی به علاقه دارن یا کسانی که علاقه دارن های مختلف مزایای مختلف رو امتحان کنن یه سری خوراکی‌های خام که به صورت ترکیبی هست حالا حتی خیلی وقتا شکلش هم شبیه خوراک پخته میشه که به واسه ذهنی طرف اینطور واسش تداعی بشه که محدود نیست یعنی مثلا کباب خام گیاهی که درست می‌کنن به شکل همون طواب که تو ذهنش دیگه اون طور مجسم بشه هرچند که البته از یه طرف هم یه نکته منفی که در این قضیه هست اینه که این هایی که روی این قضای خام میذارن باعث میشه که طرف ذهنش دوباره مشکوله همون قضای قبلی بشه ولی خب دیگه یعنی نه کاملا خوب این راکار نه کاملا بد اما میتونه کمک کنه همین مزه خوراک ترکیبی که در واقع یه یعنی علاوه بر حالا مزه میوه ها که باب طبع انسان هم هست اما خب انسان دوباره تنوع و این میتونه یه مقداری اون حس تنوع طبیعی رو ارضا کنه و البته هر سعی بشه که این ترکیبات اوراکی خام سالمتر تر باشه و از ترک کردن مواد ناسازگار با هم پرکیز بشه هم برای سلامتی شخص بهتره و هم برای تغییر عادتش سعی بشه زیاد از ادویجات استفاده نشه چون این یک عادت که از زمان پختخاری در شخص باقی مونده در بخوام آخاری قراره که اینها تغییر کنه مصرف زیاد ادویجات میتونه باعث بشه که طرف همچنان به مزه ها وابسته باشه و همچنان ترک عادت واسش سخت بشه اما یواش یواش که حداقل تا جایی که میتونه اصلاح کنه حداقل تا جایی که میتونه سایکه که غذاش سالن تر باشه به مرور زمان که مدت بیشتری از خامگی آخری بگذره خصوص معمولا بعد از 6 ماه تا یک سال حصل های شخص برای غذای قبلی خیلی به طرز چشمگیری کم میشه. اگه کامل از بین نره حداقل تا حد زیادی این تمایل به خوراکی های قبلی کم میشه و دیگه شخص راحت تر با این شیوه زندگی شده ادامه میده. بسیار عالی جواه قهرمانی، ممنون از لطفتون خب فکر میکنید که در مورد همین بحث قسمت های روانی یا به نوعی آمادگی روانی پیدا کردن برای اینکه که بریم از پخت خاری و خاری به سمت گیاه خاری و هامگیاه خاری حرکت کنیم. یعنی برنامه ادامه دار خواهد بود یا این قسمت روانی جا داره ما ادامه بدیم یا یه پادکست دیگه در موردش بریم راستش فکر میکنم که بشه. تخصص در واردش شد حالا هر کدوم از این مصادیقی که توضیح دادم شاید برش هستن در مورد هر کدومشون یه پادکست کامل درست کرد مونتا میخوام اول اگه ممکن باشه شنوندهای عزیز بازخورد بدن بیشتر از دغدغه‌ها و مشکلات خودشون بگن و بیشتر بگن که چه چیزی دوست دارن در برنامه پوشش داده بشه روش بحث کنیم که مفیدتر باشه حالا چون شنوندهای کانال شما هم از قشرهای مختلف هستن من میکنم که بهترش اول یک بازخورد بگیریم بعد ادامه بدیم کاملا موافقم یکی از موضوعاتی که است اینه که ما چند تا بازخورد که میگیریم معمولا توی کانال اگر قسمتی رو پوشش ندادیم و نسبت به اون قسمتی که پوشش ندادیم بازخورد میگیریم ترجیم می‌دیم، اون قسمت‌ها رو پوشش بدیم منطقه بازخورد دادن برای مخاطبای ما هم به نظر یکم سخت میاد حالا من همینجا خواهش می‌کنم از دوستانی که حال به این حوزه علاقمند هستن و دوست دارن که برای خودشون قدمی بردارن برای اینکه که سالمتر زندگی کنن و طبیعتا فرهنگ سالم زندگی کردن رو هم گسترش بدن توی جامعه خودشون به ما فیدبک بدن به ما گزارش بدن به هر حال لینک های ما هستش برای اینکه در خدمت پیشنهادات و نظرات و انتقادات دوستان باشیم خیلی ممنونم باز از وقتی میگوشید جامعه مهین قهرمانی نجات و خوشحالم که این مسیر رو داریم با هم دیگه و به لطف شما داریم پیش میبریم امیدوارم که ادامه دار باشه من متشکرم از لطف شما و زحمادی که تا الان کشیدین خیلی ازتون غی میکنم و امیدوارم که بتونیم این مجموعه پادکست ها رو ادامه بدیم و برای همهی عزیزان مفید واقع بشه انشاالله حتما باز هم سپاسگزار و خدا نگهدارتون باشه خدا نگهدار